یه بی سرود میخونه برای شانسوین کوران سوده می دنم بس وقت علمت تو سرم داره لوخ میده واسه امینه وقتی میبینی منو فکر میکنی دینام یه بچه خونگی که باید درس تو بخونی بری بابا وایس بشینی ماشینشو برنیت و از اونایی که آقا میرن پارتی دارن چند نفرم گشته باشن و میقصاص نمیزارن کو از اونایی که ددیز خرجت میده یا ذراک که جونم مخاطب پیش‌ریزیه چی یی پاپیتو سال برات شسیر اسن گوش نمیده فابریک میگیره بس تو از اونایی است که شلوار رنگی میپوشی زندگی خوشگله مثل خودت بینی پوی جای اون نیستی که میفروشه گل تو چاره در واقع چی نیستی؟ خالی پوشی های اون که به برات معنی ندارم سال هم می بینم هرکی روی کلفتت سواره تو اصلا چاولایی که روزه رنگینه و طرف ما گ چون فاضمون سنگین هاره را تو کلا با اون برق می کنه هرچقدر میفهمی می فهمی کلمدی خود تا به قدی می تو دیگه زیر میشی و خصه از زندگی ناله میزنی میشی.زار به حساب آغاز شروع. آغاز اگه اینجوری پیش بریم ازادین بله خوتونم خوب میدونین که چی میشه بعدش تر عادت نکنه به شرای ترگز چ اون چند سال بعد تغییر و سخت سخش درقش الب چیزی نیستن واسه مطره متنش و ولی میگم شاید یکی همداد نش اومنی که به خودم اصلا نمیگم رفت تو باید ترک گفتی پر هپف مقصدی الان نمی میرسید کسی به حرفیه الگووی معروف میافته ملی اونو که به حرف اصلا میافت دور اونی که تو مجازی خیلی نیازنده نیات بنده به کااق قلم اونی که تو بازی میمونه بردش مسلمه اگه گیدی کسی مورد ویجی تو نداره خب چه اپیک زندگیت بار از آدمه با حبت توجه انسانیت سلام کسی میده بین ها اهمیت و توی سالن تی داشته باشن که بگه توجه با این آ ای جا ماشق سرکوب زندگیقر سرزنش رادمهایی که عجیز برای ساختنش رادمی که همهجان دک کردنش باید بفهمید و اضافیه پیچوندن دادرنالی نمیشم تو اون نفس کوچیکت که آرزو ترش رام باشه تو موسیکه تو دیدت نسبت به این دنیا خیلی کوچیکه من بزرگ میشم یه تو اون دیوت